الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد تقریبا ان اشکالاتی که بر حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه وارد کردن الحمد لله که شبهات را تقریبا جواب دادید و حالا چند چیز اساسی مونده حالی بحثی که مشبه بعد از اون حمله شورشی ها و سازش به طرف مدینه منوره و تایین خلیفه بعدی صورت تایین خلیفه و بعد از اون حال اون شورشی ها چه شد چکار کردن کجا رفتن اینو خیلی مهم هست مسئل بعدی هم خدمات حضرت عثمان رضی الله تعالی نو فتوحات حضرت عثمان و مسئل بعدی هم زمان حضرت علی حضرت امیر معاویه جنگ جمال و صفین وا طغریسنده پایان خلافت حضرت حسن ابن علی و حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما تا اونجا انشاءاللهی بحث میرواد الله تقریبا نزدیک یک سال است که واقعا تاریخو داریم میگیم امم چند روز است اون هفته است سال میگذره نصف سال تایون از این نصف سال میشه ایک بحثی هست که چیز خیلی جز کرامات حضرت عثمان بعد اونا میگن چه زوری شهادر استی و چه کارهایی کردن در فتنه بودن آقابت اونا چه شد اونا که راضی به این فتنه ها شدن حال اونها چه شد این همهش سر حقایقی دارن اما کرامت حضرت عثمان رضی اللہ و تعالیٰ و در مدت خلافت راشده ایشان انگامی که شورشی ها اختلافت تا چهار سال طول کشید و چهل روز این بزرگوار و بزرگ مرد تاریخ محاصر شد جهان اسلام با این گستردگی دوچار شورش نشد دوچار تلاتو و سردرگمی نشود. کوچکترین کوتاهی در کل عالم گسترده اسلام ظلمی صورت نگرفت. امور اسلامی به صورت خیلی خوب در حال اداره بودن بودن که درست اداره می کردن. درست عمل می کردن ادالت حضرت عثمان و سیاست ایشان اینقدر خوب و متین و زیبا بود و اینقدر بردوار و مردمی و خاکی بود که زکات نمیگیره. مردم خودشون زکات می آوردن این جمع کرد زکات دیگه رفت هر کسی خوش دکات می آورد اگر کسی مطالبه می کرد مطالبه می کرد که به من مال بده از بیت المات در شواز می کرد گوه برو داخل هرچ می خیبردار مردم چقدر قانه و چقدر مستقی و پریزاد شده بوده هر کسی این مطالبه نمی کرد. این فراوانی ریز و مدیریت اقتصادی حضرت عثمان خیلی بالا بود. قبران در زبان نبی کریم زکات می میشد. خلافای قبلا هم همین کار رو میکردند. اما در این زمان زکات جماعتی نمیشد. و هر کسی که مطالعه که به من بده در باتو داخل. چی میخوای بردارو رو؟ و از این، از این همه مهمتر و جالبتر این بود که جهان اسلام که قبرست ترکیه خیلی مصر ایران سین افغانستان آذربایجان، این کشور بزرگ اسلامی که در دو قاره تا سا، تا سا قاره خیلی گسترده و پهناور شده بود تمام شورشی هایی که شورش کردن افراد ساد بودند که تعداد اونها به دو هزار نمی رسیم. این خیلی مهمه این می اون بزرگ مرد بودن اثمان بن افغان را این مرد بزرگ اسلام مخالفینش فقط دو هزار نفر بودن دو هزار کشوری که از آذربایجان گرفته تا مصر از اروپا گرفته تا ایران و افغانستان و سند این همیشون در کنترل آمده بودن افغانستان فرد شده بود ایران فرد شده بود ارمنستان و تاجیکستان و خیلی جاها گسترده و خیلی این جهان اسلام خیلی وسیع شده بود اما این ارمانیه کلن در دائره اسلام و قلم روی اسلام بودن تنها, تنها افراد در این جهان بزرگ معترض بودن اشکال می دو هزار نفر از کجا؟ از چه مرکز است جای بزرگ اینها اقدام جای نقطه اساسی یک کوفه باسره و میسر از جا دیگه نبودند. این دو هزار هم همیشه اون یکی از فتنهگران سران فتنه نبودند. بعضی ساده لو که متاثر از تبلیغات اون افراد بودن، اون با آنها شامل شدند. افراد واقعی این فتنه در رأس اونها عبدالله ابن صبائی یهودی بود این در مصر زندگی می‌کرد شورش می‌کرد افرادی رو تحریر کرد و به نام به نام محبت اهل بیت این فتنه رو شروع کرد این فتنه جونجاست آخر. امروزه هم به عینی این سیاست یهودیت در حال حاضر هم به عینی داریم می‌ذیویت میشه چندین بار این جمله گفتم بازم میگم این سیاست ها و کل سیاست جهانی دو تا بیشتر نیستن خیر و شر را. خیر و شر این دو تا موج منفی که از بازوی خلقه تا اینها مقابل هم هستن تا مقابل هم همه اون کسانی که در شر بودیان و شر انگیز و فتنگر بوده از اون حالا یک نوع سیاست داشتن اونهایی که دنبال خیل بودن اونها تقریبا در سیاست هم بشترک بودن چرا؟ چون همین شر شیطان هست و این هم ایمان هست همین در تمام فتن اینها مشترکند ها مشکی چه ترهای رو به کار میوردن امروزه همون ترها فتنگران اون زمان چه کارها میکردن امروزه همون کارها دارن میکردن پس اون زمان عبدالله ابن, عبدالله ابن سبای یهودی برای اختلاف در جهان اسلام به نام شعار اهل بیت محبت اهل بیت خاص که حکومت اسلامی رو از بین برد همین کار رو خاص بکنه و هم انجام داد امروزی هم جهان اسلام اگر ببینید همیشه که رهبر هم میگه که بعضی مسلمان انگلیسی آمریکایی به اینی در پاکستان یک گروه میاد بر مسجد اهل سنت حمله میکنه به این معنی شیعه ها انتحار کردن و به این چند روز با حمله میشه به مسید تشیح به این که سنی ها این حمله کردن تا این دو گروب جنه هم نگر گرند این چیز تابل شده این تصنون نیست این بخاطر هیچ چی هم نیست که حرف ما سیاسی نیست این واقعیت امره. این پاکستان خیلی اعمال کردن چقدر مسلمان داره میکشن تا آخر متوجه شده مسید حال سنو که به اسم شی اما سه شیر رو تخریب کن به اسم سنی تا این مسلمان هم همیشه خون میدان خون باید داغ باشه به با اینی همین سیاست را عبدالله ابن صحبه یهودی اون زمان شروع کرده بود به نام اهل بیت تا جهان اسلام را از بین ببره و یه بدگمانی و یه که جنگ را برای همیشه راشن نگه حبیداره این سیاست را بسره گذاشت تخم سیاست را کاش و هنوز هم وجود داره هنوز هم مسلمانها به اتحاق و اتفاق نگیرسند در خونه ها به نام فرقگرائی و تکفی دارند نیخته میشن. چقدر خون دار نیخته میشه؟ همون فکرها ها هستند پس بی مردک شروع کرد همین چیزها رو افراد رو کرد به بحانه سازش به تر مدینه حرکت کردند بحانه دیگر هم غیر ازدی نداشتند رفت مدینه طیبه بعد ما روی حضرت عثمان فشار وارد میکنیم تا خلافت را رها کنه تاکتیک رسیده مدینه طیبه این فشارها را وارد می‌کرده فشار وارد فشار وارد و بعد از اینکه حضرت عثمان تا متاثر میشه اما نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و وسلم قبلا ها حضرت عثمان را یه يت... مشوره دادی بودند تذکر داده بوده و او را متوجه کرده بوده عثمان یک زمانی می آید افراد میخوان الله به تو پیراهنی می, می پوشاند افراد میخوان پیراهن از سنت بیرون کنند اما پیراهن رو بیرون نکن پیش بینی بود به بی امر خلافت اون خلافت می و افراد می که این پیراهن رو تو بیرون که این خلافت تحویل بده اما نگاه کن این رو تحبیل ندهی اینجا حضرت عثمان رضی الله تعالی نو شخصیتی بود انسان بسیار عجیب بود که نبی بکران صلاح همیشه از بورد و حیای بزرگ عثمان صحبت می کرد حیاء این قدر زیابی تا از جگر نبی کریم آخر کرد نبی مورد اعتماد نبی کریم بودن راه عثمان لیبن افوان هنگامی علا جلوسر در هنگام شهادتش میگم. هنگامی که شهید کردن برای اینکه مدینه آلوده نشه در مدینه قاغر نشه گفت که هر غلامی که شمشیر بیاندازه و درگیر نشه آزاده اینجور آزاد اما نخافت که در مدینه خون ریخته بشه شهر براش خیلی مقدس بود حضرت حسن ابن علی رضی الله تعالی او هم آمد برای دفاع او اموجان دفاع هم گفت نه حق این است که برود حضرت علی ابن نبی طالب فرزنداش و فرستاد دفاع بکنید اما حضرت عصفان قبول نکرد پس این بزرگ مرد, مرد تاریخ داره خودشو فدا میکنه، اما بدیره رو آلوده نمیکنه. اینجا میتونی راحت برای اون خلافت مهم نبود خلافت تحویل میداد نبید اما در مدینه خونریزی ریزی نکنید اما همون حرف بسیار مهم نبی کریم که رحان رحان نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اینو به حکام و به عمراء مسلمانات پیشنهاد کردن که شورشیها حملی میکنن اگر کسی حاکم بر حق اسلام بود نباید زیر بار بره زیربار بار جان تو بده اما زیربار بار ظلم نرو تا نبی کدی چیزو فرم بوده چون که اگر حاکم تسلیم بیشه هر حاکم تحت فشار قدرتها قرار میگیره و رازی رفت کنار و اسلام به مخاطر می و خاطی فرمودند که جان تو بده اما اسلام رو اینجا به خطر حکم بعد این کارو می این یک باید باید دفاع از کیان اسلامی و احکام مزورد و اسلام و جان و داد اما باید تسلیم استقوار شد تسلیم کفر شد و نبید حکومت را رحا کرد اینجا حضرت عثمان تقریبا همین کارو کرد و تبقیمون پیشنهاده نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم یک تسلیم اونها نشد حسنگاه همین که حضرت عثمان در این خل... ده سال خلافت و در این مدت بزرگ کارهای خیلی بزرگ وقت کسی در صحیدار مخالب اشتگاه داشته باشه این خودش یک کرامت بزرگ برای بزرگیش هست حالا در این زمان ما هر حاکمی دو هزار نفر از بستگانش داری مخالف نه از کلی مملکت، از کل مملکت دو نگاه کنن فرد میلیون ها نفر مخالفن مگه نیستن؟ افکار مختلف نزدگاه مختلف مذاهب مختلف قطعا مخالفن مخالفت میشه در یک شهر شد دو هزار نفر مخالف داشته باشن فرد عادی میشه دو هزار شهر مخالف داشته باشه نه در راست عمر کس کسی که خلیفه باشه پس اون زمان وقتی که مخالفین فقط تا دو رسیدن، نرسیدن اونها که هم صاد الله بودن یعنی میرسون که درست عمل می کرد عمل کرده درست مدیرت بالا بردواری بالا تقوای بالا خدا ترسی بالا و کارهایش همیش اسلامی و بود درست بودن این بود اون شبه ها دیگه زیاد اونجا تأثیر گذار نبودن این هست اون ارزش خلافت حضرت عثمان لبن حالا بعد از اون هم تو که بحث بحث شورشی ها وقتی حضرت عثمان را شهید کرد تو این اینجا باید بگم که اون بحث چنده یه بودن خانده؟ بحث بکنی؟ بحث ای هست که اینجا که حضرت علی با وقتی بخلافت هستیده اینجا فشتا از کجا وارد شد همه شوریشی ها خواست وارار کردن برای خلافت حضرت علی در حالی خود امام هستند اینجا بدد یک مشوره خیلی با حکمت دادن خیلی حرف بسیار وزنی حضرت حسن ابن علی دادن الان شهر هفته بعد میگم اما اینجا فقط حرف این بود که اینها خواستند که باز زور حضرت علی به قدرت برساند تا مردم را بدگوام کن علی با اونها بوده تا اصفان عذر بکنه این, باز این تخمی خیلی فتنه و اختلاف رو جا بکاره یعنی همیشه فتنه ها پشت شخصیت همیشه قائم میشن و شخصیت ها رو اونجا متزنزل بکنن این هم ایک از نکات های مهم بود که اونها ها دنبال میکردم چگونه بدگوانی و تخمی اختلاف رو در جهان اسلام بکاره حالی تخمی بس اختلاف خوب کاشته شد و خور هم و بارور شده سفر تا آثار سر جهان دیگه در خود خودش رو نشون